درخشش آفتاب و هشتوم آسمان ولایت حضرت علی ابن موسر رزا علیه آلاف و تهیت و سناست امام هشتوم علاوه بران که بر شیعان جهان مقام ولایت دارد وجودش به مرز و بوم ما برکتی خاص انایت داشته است و یکی از افتخارات بزرگ ما ایرانیان است که منقد متحرش در محدوده این آب و خاک است ما تلیعه این روز بزرگ و تولد مبارک را به عموم شیعیان به ویژه هموطنان ارجمند صمیمانه شادباش می گوییم بدین مناسبت امروز جمعی داریم و در جمع شادی ما شاعر گرانقدر آقای پژمان بختیاری شرکت دارند که از وجودشان در جای خود استفاده خواهد شد علاوه بر آقای پژمان دو قطعه موسیقی شنیدنی داریم که شما را به شنیدنش دعوت می کنیم گوینده برنامه آقای جمشید عدیلی هستند و شعری از قاعانی روایت خواهند کرد تهیه کننده برنامه هم آقای عباس تهرانی هستند زمنا شعر طلوع محمد را که در روز اید فطر این بنده خواندم اده زیادی از شنوندگان تقاضای تکرارش را کردند و من مناسب دیدم که امروز به مناسبت تولد حضرت رضا تکرار کنم چون این قطعه در باره تولد حضرت محمد سردودمان خاندان بلایت است و در این جای بیمناسبت نیست حالا سخن را وا میگذاریم به آقای پژمان ببینیم شعری دارند و سخنی و چجور میخوان شروع بفرماند؟ آقای پژمان دویگه میتروفونه حضرت علی بنده خیلی دیر متله شدم که امروز اینجا محفری خواهید داشت در این مورد و فرصتی نداشتم برای اینکه مطلبی حاضر بکنم و شعری بگویم من حاضر اون که خواندم پور تیگه کردم و اگر اجازه بفرمایید در باره اسلام و تشیع در ایران هم به طور خلاصه یک مطلبی ارز کنم ما آریا نژاد و امامی ملتیم این ایم ما اگر به نظر خوب یا بدین بد آندم که با خیال علی خوشدلیم و شاد آندم که با خیال علی خوشدلیم و شاد چون طفل شیرخاره صفای مجردین بسیار بسیار تا خاک توس مرغد سلطان دین رزاست از جان و دل سناگر اون پاک مرقدین احساس رنج قربت اگر می کنی مکن که اینجاست مصندت تو ما گرد مصندی آفریم آفریم باز بفرمید آقای احساس رنج قربت البته همیشه می گوین امام قریب بله. در حالی که به نظر بنده این از سایر احمه بیشتر در منزل خودشه و در موتن خودشه آمه زیرا که در ایران بارگاه و داره که شاید اگر از جاهای دیگر بود به این مقام رو احساس رنج قربت اگر می کنی مکن که اینجاست مصند تو ما گرد مصند شب می شود خواهد ره سنای تو بود دلم ولی تو معنی کلامی ما حرف عبجت بابا که خیلی متشکر، خیلی متکر پس بعد از این شعر ما انتظار داریم که سرکار چون محقق هستید در این باره سخنی هم بفرمایید و آرایش کنید شعرتونو با سخنی اطاعت بکنم عزیز کنم حضورتون که برای تحییه این مطلبی که حالا جنبالی قصور فرمولید به باز هم وقت نداشتم و تنها با برداشتن یادداشت های از این کلیاتی چیزی تیه کردن که در اسلام و تشعیر در ایران باشید ملت متمدن و هنرمند ایرانی که قبل از اسلام بر اثر جنگ های 700 ساله خودش با روم از یک طرف و از طرف دیگر پیدا شدن عبیان و افکار گوناگون لچار زحمت و درد و اصناپدین شده بود هنگامی که با اصول و قواعد انسانی مذهب اسلام آشنا شد و عبارت صادقانه حضرت ختمی مرتبت را وعده برابری سیاه حبشی و سید قدشی را شنید نور و امیدی در درش تابید و عدل و مساواتی ده که انتظار داشت تا پایان حکومت خلفای راشدین کم و مشاهده کرد اما موقعی که معاویه پسر ابو بزرگترین دشمن اسلام و اسلامیان برمنبر خلافت نشست تعصب نژادی و برتری قوم عرب را و جمعی احملن مغلوب مخصوصا ایران و ایرانی به شدید ترین وصحی نشان داد و به قول فردوسی کبیر آشکارا دیده می که زیان کسان از پی سود خیش بجویند و دینند برادند پیش در هر حال با تمام فشاری که بر اجداد ما وارد شد روش زندگی و فکر ملت مغلوب تبدل نیافت ایرانیان با قیام های پیاپی و, پی و جنگ های تمامی نپذیر در صدر احیای رسوم اجدادی مخصوصا طرز حکومت ارسی سلسنتی برامدن این اندیشه به نام خونخواهی حضرت سید و آغاز شد و به زودی مبدت به آین شیعه خاصه شیعه امامیگه از هنگامی که خلیفه حق ناشناس سعباسی یعنی حارون و رشید در توس مرد فرزندش که از طرف مادر هم ایرانی بود ایرانی ها او رو در پناه خودشون گرفتند و نگذاشتند وسیعت پدر را احترام کند زیرا که پدرش وسیعت کرده بود که محمد امین خلیفه باشه پس تاهر ابن حسینج معمور فتح بغداد کرد یعنی خودشون در کردند کردن اوان شاید دستور نداد محمد امین هم علی گبن ایسا را با لشگر انبوه به مقابله او فرستاد. اما این سردار، سردار بسیار سفنگاری هم بود، کشته شد. شهر بغداد به تصدف سپایان ایرانی درآمد و محمد امین هم به قدر رسید. اونگاه در صدرت برامدن که امام هشتوم علی گبن موسر رزا علیه السلام به نام ولی عهد معمون به خراسان ببرند. سایتم در یکی از بلاد آباد و انتیار به نام پایتخت ساکن بشن بعد معمون در عدم بفرستند و ولیعتش رو به خلافت بنشانند تا حق به حقدار دار برسد بلاخره حضرت رو به خراسان بردن و با ترکیب مجلسی با شکوه حضار و محفل روا داشتند با ولیعت بیعت کنند شیخ مفید اول کسی بود که با وی بیعت کرد شعار سیاه آل اطلاس هم به جامعه سبز سیادت مبدل شد البته این عمل مرمون با امگال خودپرستانه بزرگان طرف موافق نبود شورش ها کردن که همه سرکوبی شد و فضل ابن سرد که در حقیقت باعث ولایت اهدی امام شده بود نمیگذاشت گذاشت خردی به مرمون برسه متاسفانه امام علیه السلام روزی نزد مرمون رفت و اون از اقنامات والی عراق یعنی حسن ابن سرد می به خلیفه اترادا معمون به نام خواندن فتنه آزم وغداد شد و نخست فضل و و پس از اون امام همام را هم مسموم کرد و به جنت اعلا فرستاد و نامی هم به شدور و سرزنبانان عرب نوشت که اگر وضع آن مرد آن مرد مخصودش حضرت رضا بود که اگر وضع آن مرد بر شما گران می بدانید که او رفت این من خود نزد شما میآیم. البته می دانید که یکی از مشکلات مسلمین خاصه شیعیان مسئله امامت بود چرا که رشته کلیگه امور دنیاوی و دینی در دست او بود و پایه نزا در اون موضوع این بود که امام باید چگونه کسی باشد چگونه انتخاب شود؟ آیا یک امام است یا در آن واحد باید اهم متحددی در ولایات باشند؟ شیعیان امامیه معتقد بودند و هستند که دنیا هرگز از امام خالی نخواهد بود ولی خدا مختار است چطور حاضر میگذارد یا واقع پس از ولات امام حسن عسکری اختلاف مشرب شیعیان و تفرقه آنان به جای رسید که تعداد فرق شیعه از مالغ 158 دسته شد که یکی از مهمترین آنها جماعت اثنا عشری و مذهب حقه جعفری است در برابر سب جه یا هفت امامی موضوعی که فرموش کردم از کنم اینه که چرا حضرت رزا حوادث اراخره به معمون آشکار ساخت و در نتیجه هم خودش و هم طرفداران خودش به کشتن داد بدون که کسی از به چیز پسیده باشه باید ترجع کنیم که امام نمیتواند از توطعهی که منجد به کشتن خلیفه و شاید جماعتی کثیر بشود آگاه باشد و اون را پنهان کند چه سکوت او دلیل برای این است که شخصا در این توته دست داشته است. از این جهت امام با اینکه که بود که گفتن این داستان با حسابت خودش هم خواهد شد داستان رو به معمون آشکار کرد. دیگه از ندارم. خیلی متشکرم آقای پیجوان تحقیقات جامعه و خوبی فرموده بودید. از رو بدید من حاشه بزنم به سخنتون و بعد از همون سپاسخزاری شایانی که می کنم باید از بکنم همطور که مسبوخ هستید حده شاید ندونن که اسم حضرت رزا علیه علی ابن موسا لغبشون رزا و کنگشون عبالحسن تولدشون در 153 هجری بود و وفادشون در 203 هجری یعنی سن نیشان 50 سال بود و 20 سال امامت کردند و معمون به خاطر آن حضرت شعار منی عباس رو که سیاه بود تغییر داد و شعار اهل بیت رو که سبز رنگ بود انتخاب کرد به احترام حضرت رضا حضرت. و حال خیلی خیلی سپاس میگویم زحماتی کشیدید و متشکرم شدید ضمنان این رو حضرتون کنم که نام امره که در نظر بگیریم یک موسا یک جعفر یک حسین دو حسن سه محمد و چهار علی بود به. خداکیه که زیام بشیر مطممن معترپس کردم به شعر به صورت دی گفته خیلی متشکرمای پشمان خاش حالا برای اینکه روز روز مبارکی بشیر و باید نشاد کرد و شاد بود اجازه بفرمایید که یک قطعه موسیقی بشونیم و باید به عرض بکنم این قطعه موسیقی برای اولین بار از رادیو پخش میشه و یک موسیقی نمونه است و خیلی خیلی جالب توجه که نهی هست و قانون. قانون اون رو خانم سیمین نواختند و نش آقای موسوی. حالا بشنوید و درباره خوبیان داوری بفرمایید. آقای پیشمان از این موسیقی خوشتین اومد بسید بسیار خوب خیلی لذار فخش بله حالا همطور که مسبوخ هستید قصیده قررایی داره قاانی شیرازی چون من در بین شعرات جا تفاوز کردم که شعر مناسبی پیدا کنم برای امروز و شعر قاانی خیلی به دلم نشه است در کار خودش البته در کار قصیده و از آقای عدیلی گوینده گرم سخن خواهش میکنم که این قطع شیر رو بخونن و لذت ببریم. با کمال افتخار بگردون تیر ابری بام دادان برشد از دریا جباهرخیز و گوهرریز و گوهربیز و گوهرزا البته معذرت میخوام من یادم رفع ارز بکنم همینطور که روش غزل غصید سرایون هست با تشبیب و تغذل و بهاری آغاز میکنن، و این برت ارم قوانی با بهاریه آغاز کرده و من از آقای عدیلی خواهش کردم که دو سه بیت از بهاریه رو بخونن و بعد کُرنیش بزنن به مره. نام عزد رزا. این از درزان این است که در وصف بهار داره میگه قوانی و بعد مطالب دیگه بگردون تیر ابری بام دادان بر شد از دریا جواهر و گوهر ریز و گل گو و گوهر کنش باغیر آلوده دلش از شیر آموده برون پرسرمه سوده درون پرلولوه لولا چمن از فر فروردین چنان نوزان بدشت چین که تو از فر شاهدین بر این نه گمبد خزرا خجبر بیشه امکان نهنگ لدجه ایمان ولی ایزد منن علی آولی اعلی امام سامن زامن حریمش چون حرم آمن زمین از حزم او ساکن سپهر از ازم او پویا نهال باغ اللیین بحور مرغ دین نصیم روزه یاسین شمیم دوهی تاها صحاب عاد را جاله ریاض شر را لاله بر برچهر او واله روان از مهر او شیده نظام عالم اکبر قوام شرع پیغمبر فروغ دیده ی حیدر سرور سینه زهرا وجودش با قذات و ام زجودش ما سوا خرم حدوسش با قدم همدم حیاتش با ابد همتا وجودش با قذات و ام زجودش ما سوا خرم همدم حیاتش با ابد همتا زمین گوییست در مشتش فلک مهری در انگشتش دوتا چون آسمان پشتش به پیش ایزد یکتا به سائل بحرکان بخشد خطا گفتم جهان بخشد گرفتم کو نهان بخشد زب سیاری شود پیدا رضای او رضای حق قضای او قضای حق دلش از ما سوای حق گذیده ازلطه انقام ردای قدس پوشیده به حزم نفس کوشیده به بزم آنس نوشیده می وحدت ز جاملا زدوده زنگ امکانی شده در نور حقفانی چو مه در مهر نورانی چ آب دجل در دریا زده در دشت لاو خریه کلا معبود الا الله ذکاخ نفس جست ره به خلوتگاه استثنا مهین نوباوی آدم بهین پیراوی آلم چو خیر المرسلین محرم به خلوتگاه او اطنا توی قولب توی قاهر توی باوتن توی ظاهر توی ناهی توی آمر توی داور توی دارا مسالک را توی رهبر ممالک را توی زیور، محامد را توی مظهر معارف را توی منشا زهی ای نخل باق دین که تندر دیده ی حقبین نمایت خوشه ی پروین تم از یک خوشه ی خرما در اصاف تقا آمین دهد دا دخمست او دهقان سنا و عمل باران، فشانت دانه در میزان که چینت خوشه در جوزا. تاولالله گرش خانی، معازالله گرش رانی، به هر حالت که میدانی، توی مهدر، توی مولا. گرشخانین زهی بازل ورش رانین خهی آدل گرشخانین شود خوشدل ورش شود رسوا گرشخانین افا کله ورش رانین کله به هر صورت جزا کله کما تبقا کما ترزا گرشخانین سنا گوید ورش رانین دعا گوید نترسد برملا گوید ستم زیبا کرم زیبا علا تا در مه نیسان دمد از گل گل و ریحان دروید سنبول از بستان براید لال از خارا چو لال زاگرت خرم چو گل با خرمی تو ام سبز و مشکیندم چو سنبول بوستان پیرا متکرم آیا دیلی بسیار بسیار خوب کندید و حالا بعد از شهر قانی با اجازه آقای پشمان و شما میپردازیم به پخش قطعه موسیقی یعنی دوستان عزیزی که این قطعه رو در شمکاری دارند آقای گلپایگانی هستند که آواز میخوانند و همراه ایشان آقای اسدالله ملک و مجید نجاهی ساز می روازند در حمایت جان عارف فريق بندگیه عارف فريق بندگیه شافت شکم بندگی شاب تیش کار وانگاه در طریق وانگاه در طریق را سردری سمر دو ر آقای گلپایگانی و آقای ملک و آقای نجاهی از همکاریتون در این برنامه و در چنین روز مسبود و مبارک بسیار بسیار سپاس گذاریم حالا بنابرای وعده که در آغاز برنامه کردم بار دیگر می پردازم به عرض شعر طلوع محمد که گویای میلاد خاتم پیغمبران حضرت محمد بن عبدالله هست و همونطور که ارز شد میلاد محمد با میلاد اعمه یکی چون همه نور واحد هستند و من چون در مورد از درزا شعری نداشتم خواستم در این باره سهین و شریک باشم بدین جهت شعر طلوع محمد را به شرمندگان عزیز تقدیم میدارم زمین و آسمان مکه آن شب نورباران بود زمین آسمان مکهان شب نور باران بود و موج عطر گل در پرنیان باد میپیچید. امید زندگی در جان موجودات می جوشید هوا آقشته با عطر شفا بخش بود جبی مرموز و رؤیایی به شهر مکه مهد پاک جانان دختر محتاب می‌خندید تو گویی ساحت ام القرى در خواب می‌خندید ز باغ آسمان نیلگون صاف و مهتابی دم آدم بس تاره میشه گفت و آسمان پولک نشان می‌شد صدای حمد و تحلیل شباویزان خوشاهمنگ به سوی کهکشان می‌شد دل سیاره‌ها حال تپیدن داشت و دست باغبان آفرینش در چنان حالت سر گل‌آفریدن داشت شگفتی خانه ام القرا در انتظار رویدادی بود شب جهل و ستمکاری به امید طلوع بامدادی بود سراسر دشت کاه آفرینش اضطرابی داشت و نبض کائنات از انتظاری دم به دم می‌زد همه سیاره ها در گوش هم آهسته میگفتند که امشب نیم شب, شب خورشید میتابد از شرق آفرینش اختر امید میتابد در آن حال امینه در عالم سرگشتگی میدید به بام خانه بس آبشار نور میبارد و هردم یک ستاره در سرایش میچکد رنگین و نورانی از این قدرت نمایی ها نصیب او شگفتی بود و حیرانی دراندم مرغکی را دید با پرهای یاگوتی و منقاری زم و رتفام که سویش پرکشید از بام، و در صحن سرا پرزد و پرهای پرندین را به پهلوی زن درداشنا سائید به ناگه درد او آرام شد آرام به گوته لحظه ای گردان سر را آمنه با حاله امید تنش نیرو گرفت و در دلش نور خدا تابید چو دیدان حاصل کون و مکان و لطف سرمد را دو چشمش برق زد تا دید رخشان روی احمد را شنید از هر کران عطر دلاویز محمد را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 وقار و سولت الیاس و سبر بیهد ایوب بود فرزند تو یکتا بود دلبند تو محبوب سراسر پاک سراپا خوب دو گوش آمنه بر وحی ذات پاک سرمت بود دو چشم آمنه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 بوسه ها بر روی او دادند سپس از آستین کردند بیرون دست قدرت را زدند از سوی درگاه خداوندی میان شانه های حضرتش محر نبوت را سپس در پرنیانی نقرگون آرام پیچیدند و از آنجا آسمانی دختران بر عرش کوچیدند همان شب قصه فردازان ایرانی خبر دادند که آمد تک‌سواری در مدائن سوی نوشروان و گفته ای پادشاه آتشکدهی آذرگوش ما که صدها سال روشن بود همین شب ناگهان خاموش شد خاموش به یثرب یک یهودی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 وین شعر را برخاند که ای یاران مگر دیشب به خواب مرگ پیوستید چه کسی دید از شما آن روشنان آسمانی را که از مکیان آن ماه تاب پرنیانی را زمین و آسمان مکه دیشب نورباران بود هوا آغشته با عطر شفا بخش بهاران بود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 زمین آسمان مکه دیشب نور باران بود هوا آقشته با بوی شفا بخش بحاران بود به شعر آن عرب مردم همه حالی عجب دیدند به آوهنگ دلنگیز عرب این شعر را خواندند و رقصیدند که ای یاران مگر دیشب خواب مرگ پیوستی.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 کجا بودید ای یاران که دیشب آسمانی ها زمین مکه را کردن گلباران ولی گل نه ستاره بود جای گل زمین و آسمان مکه دیشب نورباران بود هوا آغشته با عطر شفا بخش بود روانت شادمان بادا کجای ای, ای عرب کجای ای, ای عرب ای ساربان پیر سحرائی کجای ای, ای بیابن گرده روشن رای بدهایی که اینک بر فراز چرخ بینی نام احمد را و با هر موج بینی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 زمین ویران باد و سرنگون باد آسمان پیر اگر بینیم روزی در جهان نام محمد نیست در این ساعت با اجازه سروران با شادباش های مجدد و سمیمانه به حضور شنوندگان گرانقدر این برنامه را پایان می و برای همه دل شاد و بخت پیروز آرزو می کنیم روز به شما خوش